Up. Up. Up. وانی فارسی بناوی خواوندی تاکانو دلووان عزیزان ام کاتتان باش خوشحالن که هاورای مندکن لبرنامه امجاری وانی فارسی ده لبیر تانکا دایکو باوکی حورکی محمد هات نتارن باوکی رامین نخوشید دلیهایو بوچار سری هاتو بوترن محمد لزانکو دگرتاو بالام حورکی لجورکدا نبینه لبر او لبریر رامین لقل سعیدی ها و مظلی قصدکات باب زنین دلنتی سرتا سرندی و شنوکانی اموانیا می تو می دانی، تو دزدی. هتل آزادی، هتل آزادی، هتل آزادی. پدر، پدر، باک، مادر، مادر، دایک. امروز، امروز، امرو. آنها آمدند آنها آمدند او آن او دارد او دارد او حیاتی مریض مریض نخوش عمل جراحی عمل جراحی نجداری، برای برای بو رفت رفت رويشت بیماری قلبی بیماری قلبی نخوشی در کدام کدام کم بیمارستان بیمارستان نخوشخانه متاسفم، متعصفم, متعصفم. بدخوم بیمارستان دی بیمارستان دی نخوشخانه دی آنجا آنجا اوه او عمل جراحی می کند او عمل جراحی می کند او نجداری دکت. کی. کی. کی. من نمیدانم. من نمیدانم. من نزنم. من فکر میکنم. من فکر میکنم. من لنوایم هفته. هفته. هفته. بعد، بعد دواتر هفته بعد هفته ده تو حتما حتما به دنیای و پس پس کته ایادت ایادت. سردانی نخوش. من به ایادت می روم. من به ایادت می روم. من دچنبو سردانی نخوش. پدرش. پدرش. بالکی. استا جوی و اوتویجی نیوان سعید و محمد رادگرین سعید رامین کجاست؟ تو میدانی؟ سعید رامین کجاست؟ تو می دانی رامین به هتل آزادی رفت؟ پدر و مادر او به تهران آمدند رامین به هتل آزادی رفت پدر و مادر او به تهران آمدند ا آنها کی آمدند؟ ا آنها کی آمدند امروز آمدند چون پدر رامین مریض است. امروز آمدند چون پدر رامین مریض است پس برای معالجه به تهران آمدند پس برای معالجه به تهران آمدند بله، پدر رامین بیماری قلبی دارد بله، پدر رامین بیماری قلبی دارد متاسفم میدانی کدام بیمارستان می رود. متاسفم، می دانی کدام بیمارستان می رود ؟ او به بیمارستان دی می رود و آنجا عمل جراحی می کند. او به بیمارستان دی می رود؟ و آنجا عمل جراحی می کند. K عمل می کند؟ کی عمل می کند؟ نمیدانم. فکر می کنم هفته بعد. می دانم. فکر می کنم هفته بعد. من حتما به ایادت پدر رامین می روم. من حتما به ایادت پدر رامین می روم. من هم به بیمارستان می آیم. من هم به بیمارستان می آیم. ورزان امزاریش جوی دا گرین لعوتوی جکا با ورگرانی کردیوه. سایید رامین کجاست؟ می دانی سعید رامینکوه تودازنی رامین به هتل آزادی رفت پدر و مادر او به تهران آمدند رامین رشد هتل آزادی زدی در کوباکی حتن بوتن اه؟ آنها کی آمدند؟ بر اوان کیحتتن؟ امروز آمدن چون پدر رامین مریض است؟ امروحتن، چون باک رامین نخوشه پس برای معالجه به تهران آمدند که وقت با چرسریحتن با ترن بله، پدر رامین بیماری قلبی دارد بله، باک رامین نخوشی دلی هیا. متاسفم، می دانی کدام بیمارستان می روید؟ بده خوام، دزنی با کم نخوش خانده چه؟ او به بیمارستان دی می رود. و آنجا عمل جراحی می کند. آودا چت بو نخوش خانه و نجداری دکت. کی عمل می کند؟ کی نجداری دکت؟ نمیدانم. فکر می کنم هفته بعد. نزنم پیونده هفته ده تو. من حتما به ایادت پدر رامین می روان. من به دلیل یابو سردانی رامین من هم به بیمارستان می آیم. من اشتیام بود نخوش خانه. بشارک دیکا سرنجی و توجه نیوان محمد و سعید دام. امزار و توی جکا بیور گیرانی کردی سایید رامین کجاست؟ تو میدانی؟ رامین به هتل آزادی رفت. پدر و مادر او به تهران آمدند. ای؟ آنها کی آمدند؟ امروز آمدند؟ چون پدر رامین مریض است. پس برای معالجه به تهران آمدند؟ بله، پدر رامین بیماری قلبی دارد. متاسفم، می دانی کدام بیمارستان می رود؟ او به بیمارستان دی می رود؟ و آنجا عمل جراحی می کند که عمل می کند؟ نمیدانم. فکر می کنم هفته بعد من حتما به ایادت پدر رامین می روم. من هم به بیمارستان می آیم یو درنم اموتوی جاش فیرببن هرواګ بیستان محمد بنیازل نخشخانه سری بوکی رامین دت سردانی نخش نریت کی کونی ایرانی او ل ایران هر کس نخش بیت حوریانو آشنا و خزمانی سری ادنو احوال دپرسن لمکا تدا ګلو شیرنی یان دیاری دک بونخشکا دبن اگر هزده کند ریاجی چی را که کب زنن، دواتن لیده که این لبرنامه دهاتو ده ایوان فرسی مند کن. تا برنامه دهاتو ده خواتن لگل خوش بید.